قرار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خدای مر ورزیدن سلام آرام باش آرام باش چشمهای جوشان اشک را که چشمهای کودکانت را پر کردند به خوش آنان را با افثانه ها این ربایندگان شیرین جلوه های بدبختی دلداریده افسانه ها از رایجترین و برجسته ترین گونه های عدبیات آمیانند که با طبیعت و زندگی مردم پیوند نزدیک دارند. افسانه ها بیشتر به دوران کودکی بشر تعلق دارند. بنابراین از شنیدن و خوندن اونها لذت میبریم افثانه ها به گروه سنی خاصی تعلق ندارند، و با همه افراد به راحتی ارتباط برقرار کنند. براتون افسانی از مردمان سرخپوست در نظر گرفتیم به نام افثانی پوست گرگ و غزال برگرفته از کتاب افسانه‌های های نوشته هلن فور سلیتر ترجمه اردشیر نیکفور امیدواریم از شنیدن این افثانی سرخپوستی لذت ببرید و اونو به خاطر بسپارید. همیشه لباسی از پوست گرد می پوشید برای همین هم به اون پوست گرگ می گفتن. اون در دهکده مردان در سرزمین های جنوب زندگی می کرد دهکده مردان دهکده شگفتانگیزی بود و در اون فقط مردان زندگی می کردن. مردان این دهکده همه متکبر و پرغرور بودن و نمی خواستن از کسی به خصوص از زنها فرمان برداری کنند. اونا با اونچه که شکار میکردن زندگی رو میگذروندند مردهای دهکده مردان در هوای آزاد میخوابیدن و شبهای سرد خودشون رو توی پوست گرگ میپیچیدن روبروی دهکده مردان دهکده دیگه ای وجود داشت. به شگفتنگیزی این دهکده که در شمال روی تپه های خارپشت قرار داشت. و دهکده ی زنان خونده میشد و در اونجا فقط زنها زندگی میکردن و جز زن کسی در اون دهکده نبود. اونها هم همه نیازمندی های رو برآورده میکردن. البته اونها چون زور و قدرت مردها رو نداشتن جت نمیکردن به شکار گاومیش یا گاو کوهی برن. اما دامهایی در کنارره نمکزارها که آهوها و غذالها برای خوردن آب به اونجا می اومدن، پرورش میدادن زنهای دهکته زنان پوست جانوران رو میکندند و میشستند و بعد خشک میکردند و با اون لباس و کفش برای خودشون تهیه میکردن غذای اونا فقط گوش نبود بلکه میوههای جنگلی رو هم از درختان میچیدند و خشک میکردند اونا از پوست جانوران چادر می میکردند و در زیرون زندگی میکردن خلاصه زنهای دهکده زنان روزگارشون رو میگزراندند و هیچ وقت به فکر مردها نبودند روزی پوستگرگ به این فکر افتاد که از دهکده ی مردان بیرون بره و راز دهکده ی زنان رو که میگفتن در میون تپههای خارپشت از دیده ها پنهونه کشف کنه و اونجا رو خوب ببینه پوستگرگ با خودش گفت آه، باید به دهکده ی زنها برم و ببینم اونجا چه خبره و چجوریه پوستگرگ به راه افتاد رفت و رفت و بعد از چند ماه، دهکده زنان در برابرش از دور نمایان شد. پوستگرگ با شجاعت و بیپروایی به چادرها نزدیک شد. به مرکز دهکده رفت و در برابر زیبا ترین چادر دهکده ایستاد این چادر زیبا متعلق به غزال رئیس قبیله و بزرگ دهکده زنان بود. ولی پوستگرگ اینو نمی اون غذا رو نیمی شناخت و درباره زنها چیزی نمی دونست. پوست گرد به اطرافش نگاهی انداخت. همه زنها به کار و فعالیت مشغول بودن. یکی پوست جانوری رو که شکار کرده بود میکند و اونو دباقی میکرد. یکی دانه های درخت مورد رو آسیاب میکرد و دیگری با پوست حیوانات کفش تییم میکرد. زنان صرف پوست بعد از دیدن پوستگرگ هیچ اعتناعی بون نکردن و به کار و فعالیت خودشون ادامه دادن اونا دلشون میخواست مهارت و توانمندی های خودشون رو به رخ این مرد بیگانه یا همون پوستگورگ بکشند پوستگورگ با خودش گفت این زنا چقدر کار و تلاش میکنن پوستگورگ چند ساعتی همونطور آروم و ساکت به تماشای زنهای دهکده که بدون وقف کار میکردن ایستاد در این موقع غزال رئیس قبیله از چادر بیرون اومد و پوستگرگ رو روبروی خودش دید جلوتر رفت و پوستگرگ رو با دقت تمام برانداز کرد به چادر برگشت و ساعتی بعد از چادر بیرون اومد و با انگشت پوستگورگ رو به زنهای دیگه دهکده نشون داد و گفت من این مرد رو به همسری خودم برگزیدم پوستگورگ غزال رو برانداز کرد و به سرعت از اون روی برگرداند چرا که غزال لباسش پر از چرک بود و سر و صورتش کثیف و زشت شده بود همه زنهای دهکده فهمیدند که پوستگورگ غذال رو نپسندیده و غزال که رئیس قبیله بود تحمل این توهین و بی نداشت. اون فوراً به چادر خودش برگشت و زنهای دیگه به کار و تلاش خودشون ادامه دادند. اونا توجهی به پوستگرگ نکردند و پوستگرگ همچنان روبروی چادر غزال ایستاد. اون میبایست یا غزال بنوان همسر خودش انتخاب کنه؟ و یا از ازدواج چشفوشی کنه. پوست گرگ افسرده و ناراحت به دهکده خودش برگشت. ولی از اونچه که براش اتفاق افتاده بود، چیزی به دوستاش نگفت. گذشت. سرپوست دیگه ای از دهکده مردان تصمیم گرفت به دهکده زنان بره و از اونجا با خبر بشه اون هم همون راهی رو در پیش گرفت که پوست گرگ رفته بود توی کوه سانها راه رو گم کرد سرگردون شد ولی در نهایت به دهکده زنان رسید مرد سرپوست وارده دقت یه زنان که شد دید که زنا سخت سرگرم کار پختن نون ذرتن اونا میوه ها رو خشک میکنن پوست شکار رو دباغي میکنن و دخت دوز انجام میدن مرد از دیدن این همه تلاش تعجب کرد و با خودش گفت این زنان چقدر پر تلاش و فعالند مرد سوفوس در گوشه هست. اون با اینکه خیلی خسته بود، اما با دقت و علاقه زیاد بر اون چی که در اطرافش میگذشت نگاه میکرد. ها هم بدون اعتنا به اون به کار خودشون مشغول بودن. در این موقع یکی از زن های دهکده به اون نزدیک شد و با دقت اونو برانداز کرد. بعد رو به دیگر زنان دهکده کرد و گفت: من این مرد مردو به همسری خودم انتخاب می کنم. اون زن سرپوستی زیبا و ملیح بود و ظاهری آراسته و تمیز داشت. مرد سرپوست از جا بلند شد و در برابر زن سرپوست به احترامی ایستاد. زن به چادر رفت و بعد از چند دقیقه با ظرفی پر از زررت و گوشت کباب شده به نزد مرد سرپوست برگشت. مرد با اشتهای زیاد غذاها رو خورد و در گوشهی به استراحت پرداخت. زن در این فاصله برای اون یه جفت کفش و یه دست لباس زیبا از پوست گوز تهیه کرد و بعد رشتهی از چرم برید و برای مرد پیشونی بند آماده کرد و پر اغابی برون زد مرد بعد از استراحت لباس نو برتن کرد و ساعتی بعد جشن ازدواج اونها در دهکده زنان برگزار شد و این اولین جشن ازدواج در دهکده زنان بود مدتی گذشت چند نفر از مردای دهکده مردان وقتی دیدن که مرد سرپوست به دهکده بر نگشته در جستجوی اون به کوهستان ها رفتن و به هر جایی سر زدند تا اینکه به تپه‌های خارپوش در نزدیکی دهکده زنان رسیدن اونها هم گذرشون به دهکده زنان افتاد و از طرف زنهای اونجا به همسری برگزیده شدن و همونجا موندن کم کم مردان دهکده جنوبی به دهکده زنان رفتن و همه در اونجا همسری برای خودشون انتخاب کردند و به زودی دهکده زنان به دهکده بزرگ تبدیل شد. مردان در اطراف دهکده گاو کوهی و خرس برای شکار پیدا نکردند. بنابراین تصمیم گرفتند که با های خودشون به منطقه دیگه که بین دو دهکده قرار داشت برند و در اونجا به سید ماهی بپردازند. در این میون پوست حاضر نشد که به همراه اونها بره غزال همچنان زندگی میکرد بدون همسر و افسرده اونم حاضر نشد که از دهکده بیرون بره زنهای دهکده گفتن اونو تنها بذارید اون دوست نداره دهکده رو ترک کنه همه دهکده رو ترک کردند و غزال و پوست گرک. تنهای تنها دوستگرگ بعد از رفتن مردان و زنان دکده آرام و خاموش در حالی که سخت اندوهگین و افسرده بود در گوشه نشست و با خودش فکر میکرد اون فکر میکرد که حسین به بعد چجوری تنها زندگی کنه؟ آیا تحمل این تنهایی و افسردگی رو داره؟ در این موقع احساس کرد همه بدنش خوش شده پاهاش توی زمین ریشه گرفته و تنش به صورت تنه یک درختی در اومده. کم کم به اونچه گذشته بود پی برد و روان بزرگ رو سپاسگزاری کرد که اجازه داده بود به صورت درخت کاج بزرگ و تنهایی در بیاد که امروز هم مرغهای آسمانی روی اون میشینن و آواز میخونن در همون هنگام غذال بر فراز تپه رفت و از دور دوستان خودش رو دید که در حال عبور از دهکدن چون بسیار مغرور بود حاضر نشد تصمیم و عقیده خودش رو تغییر بده و با اونها بره پس در اونجا موند اون دیگه نمیتونست کارهای روزمره خودش رو انجام بده دل روان بزرگ برای اون سوخت و اونو بر فراز تپه شنی به صورت تخت سنگی سخت و محکم در آورد که هنوز هم میشه اونو بر تپاهای خار پوش دید که در کنارش گلهای مریم و گلهای خوشبوی دیگهی رویده میشه و اونجا رو اتراکین میکنه افسانهای را رو از مردمان سرخپوست براتون نقل کردم به نام پوستگرگ و غزال برگرفته از کتاب افسانه‌های سرخپوستان نوشته ی هلن فور سلیتر ترجمه اردشیر نیکپور. سرخپوستان سخت شیفته و دوستدار قصه و افسانند. در گذشته داستان سرایان قبایل سرخپوست از این چادر به اون چادر میرفتند. و برای همه قصه و افسانه نغمت میکردند. اونا تابسونا در کنار چادر و زمسونها در کنار آتش گرم بر پوستهای نرم مینشستند و افسانه میگفتند. کودکان دور اونها حلقه می‌زدند و به افسانه و قصه های شیرین اونها گوش می‌سپردند سراها و قصه گویان این قصه ها و افسانه ها رو از پدران خودشون شنیده و به خاطر سپرده بودند سورپوسان از این و افسانهها ها پند میاموختند و راه و رسم زندگی و طرز رفتار با مردمان رو یاد میگرفتند. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور ویراستار بهاره گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار راهله قفاری تیهكننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهای دیگر بدرو